رادیو فرداستا اشتباه نگیروش حال بچهای پاسفردویی برین یک گل سوسن یا سامان آمد یا یه بوی دیگه‌ای از وطن آمد آخ چه خوب شد که دیو از وطن هم رفت. جا سوی من آمد جشنه به خوشی سوی مآمد شد دهه فجر و ما در حال زجریم بس که هوای در بدن آمد کل جهان دشمن و ماته خوبی جنگ و نبرد و ستیستم آمد ویم سی هفت سال پیش در چونین روزی برابر با دوازده همه بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی هواپیمای امام خمینی در فرودگاه مهراباد به زمین نشست گفتنیست ایشان قبل از ورود به ایران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 زندگی معنوی شما را هم میخواییم منفح باشد یه خوش که مثلا فقط میشازید آب و بر را مجانی میکنیم کتبوش را مجانی میکنیم یه این که این وعده ها در ابتدا از سوگ مردم همیشه در صحنه جدی گرفته شد اما بعدها مشخص کردید که شوخ طبعی نیز از ویژگی های بارز امام بود <تصفيق> یران الله الله لا لا لا الله سلام الله خوبین؟ چه الله الله الله الله الله الله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 یه سلام خیلی مخصوص کنیم خدمت همه بزرگترها و پدر مادرهایی که بالاخره اون دوره زحمت کشیدن خیلی واقعا تلاش کردن هر روز انقدر مرگ بر شا گفتن مرگ بر گفتن تا امام در یک چونین روز فرخنده قدم رو فرق سر ما گذاشتن تجفیا آوردن یعنی واقعا ما نمیدونیم با چه زبونی تشکر کنیم به خدا زحمت کشیدید اصلاً راضی به زحمتتون نبودی. به همین مناسبت با همین مناسبت، حال ما در این لحظه با دو لاله در خون خفته چیز ببخشید با دو شهید دست از جان نه. اونم نبود چی بود؟ با, دو... با قاطی که هم دو دست گل به دنیا اومده در دوران پس از برجا نه اینم نه آقا ببخشید پس از انقلاب در خدمت شما هستیم یعنی سعید و الی بچه ها سلام چه خبر خوبی؟ و سین شما متولد بعد از انقلاب این دیگه آره هر دفعه اونم متولد بعده بله چه سالی سعید چه سالی بود من سال سه علی واقعا از من پرسین ببخشید من مذر اصلا اشتباه شد اشتباه شد آقا بگذریم بگذرید خب شما ها بوی گل سوسن و یاسمن و اینا رو قاعدتا متوجهش نشدید دیگه به هر صورت بچه ها امروز سعید و الی یه گشت گذاری داشتن تو عالم توییتر و بوی گل سوسن و یاسمن رو بین تویت هایی که کاربران ایرانی توی توییتر تولید کردن جستجو کردن زیپتون رو نکشیم بالا صداش میاد اینجا خب بچه چی آوردین کی, کی چی گفته کی بوی گل میداده کی بوی سوسن میداده چه خبر بوده آره فسی تو این دو سه روز بحث دهه فجر و 12 بهمن اومدن امام حسابی داغه خلاصه خیلی تویت هایی بامزهی داشتیم خالباز گفته که دوازده بهمن پنج هفت تنها روزی بود که برای شادی روح هموات نیازی به فاتحه نبود همون سخنانی امام تو بهشت زهره به قدر کافی تنز بود که مرده رو بخندونه دیگه خانم فرزانه نوشتن که خانم امام ازشون پرسی روح الله جان صوبونه تو هواپیما چی خوردین امام گفتن کق مقبا با اونم جواب داد دلم برای همین بانمک بازیاتون تایید شده بود. خیلی خب، حالا دیگه چه خوا فرزانه؟ خب، ترادیاتور گفته بیاین دعا کنیم امسال 12 بهمن امام نیاد، شاید همه چی ردیف شود. شاید درست می‌دونم، شاید <تصفح> بعد فرانی نوشته که فکر کنم امسال 12 بهمن خود امام خمینی رو هم سانسور کنن. وار بعید نیست والله دیدم که همه رو سانسور کردن فقط خودش بوده بعد بعد بابا گفته حضرات به هم افتادن دارن تمام جاهایی که امام 12 بهم رفته رو زیارت میکنن خلاصه یهودی یه دی تو مصراح مهرابا دست گل بود تعجب نکنید <تصفيق>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 یکی امام روز دوازده بحمر پنج بود یکی هم اندی تو اون کلیپ کارتونیش به به به پس از بوی گل سوسن و یا سمن و امام و تویتر رسیدیم به آقا اندی خیلی حرکت بود شاد دستتون درد نکنه بچه ها سعید و الی ببینیم حالا این آهنگ آقای اندی که این دوستمون گفته بود چی میگفتن آقای اندی که این همه ازشون استقبال شده بود همون است. تو لے اٹھ کے دور رُبڑ نگاہت ود تو لب یہ سن <متحن> دوں مینو دیدوں کہ تو گلے آن نو سی تو لا تو پورا سے احساسی تو اوفر دلم کو خوشی و طلا نابی تو گلی کماببی تازه باش وتاببی مثل من بیتابی آتاب تو جنوبی گل من چی بگم چه تا خوبی گل من تو گل بندلی آره آره والا یه دونه دختری آره آره والا بیا تو یاد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 آزادی نبود گفتن حقایق آزادی نبود ارتباطات آزادی نبود به ملت یاد داده بودن که همه چی شاه بله دقدر فرمودین دقیق نکردین ای چطور نشید. هش... خب عیب بدیم من اینو دونه دونه به حال با هم بریم جلو دونه دونه براتون توضیح بدم اه. کم کم همینجور آنالیز کنیم قشنگ ملکه ذهنتون و ذهنمون بشه اولیش فرمودن در زمان شاه در دینداری آزادی نبود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 درستش اینه که همه چی ولایت فقیه و اصلا مرگ بر ضد ولایت فقیه و این صحبتها ها دستشون درد نکنه برال مملکت داشت به غهغرا میرفت که امام اومد و همه چی درست شد و هوا دلپذیر شد و این حرف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 یه جلوی امام که نمیشه لباس مثلا دکل تو مینی جوب پوشید که امام ناراحت میشن حتی اگه مقوایی باش فرق نمیکنه. آقا امروز دوازده بهمنه امام که اومد بعد مهرسام اومد مرسا اومد اینجا، سلام سلام، من خیلی خواستم همزد پنداری بکنم با امام خیلی <خر rhy consistency> خوش اومدی مرسا قربونت خیلی خوش داره برگشتم به پراگ و شما آره، مرسا اومده پیش ما و داره به ما یه کمک میده اون ویدیوی شب رو اگر که یادتون باشه حتما دیدین ویدیوی شب رو زحمتشو مرسا کشید خیلی بامزه شده بود مرسی و یه گفتگوی با گروه شنبزاده داشتیم که هنوز آماده نشده رونم اونم داریم کار میکنیم آره اونم داریم کار میکنیم و به زودی به زودی آره آره اونم کار میکنه حالا یه جای دیگه هم کمک می‌گیریم ازش بالاخره آره یه کاری میکنیم دیگه پراک <تصفيق> <تصفح> چطور خوش می‌گذره همه چی رو؟ <تصفح> نگا تو برنامه گفتی پراک سرده من رفتم کلی پول دادم یه کاپشن خیلی کلفت گرفتم بعد دیدم اونقدر سرد نیست الان دروغ نگو دیروز من دیدم کل کاپشنم توت زیپش یه تا کوچیک چکشلی بودی بالا کلاشم هم بودی سرد بازم سرد بود دیروز سرد بود ولی امروز هوا بهتر بود <laughs> <تصفيق> مرسی که به ما پیوستی، با ما هستی. خیلی خوشحالم با شما. قربونت. <تصفيق> <تصفيق> قربونه. <تصفيق> خب خوب بریم سراغ دیگه حالا هوای دهه فجر و آمدن امام و اینا بیاین بیرون بریم سراغ برنامه خودمون امروز بر موضوعمون این هفته راجع به زورگویی و گلدوری و قلدورمآبی و اینا هست امروز می‌خوایم یک نگاهی به های کوچه خیابونی بکنیم ببینیم <تصفيق> زبان زور در کوچه و خیابون به چه ها و شیوه‌هایی تبلور پیدا میکنه. بس بدون هیچ حرف واشیه اضافیه سلام ویژه‌ای میکنیم خدمت اون گندلاتای عزیزی که به وجد شاخوشونه کشیدن و کتک زدن و گاهی هم جسارتان کتک خوردن رسالتی دیگه تو زندگیشون ندارن و همینجا آمادگی خودمون رو برای جمعبری امضاء و شهادت به شاخ بودن این عزیزان اعلام میکنیم به شرطی که بعد از اون دیگه وقت و انرژی ارزشمندشون صرف کارهای مفیدتری بکنن دیگه در این حد کاری که از ما برمیاد یک سلام مخصوص البته بکنیم خدمت کمی آماتورتر که گهگداری مثلا موقع رانندگی اون رگ گردن کلفتیشون میزنه بالا برای حل مشکلات به کمتر از آچارچرخ و جک ماشین رضایت نمیدن خلاصه امروز میخوایم بریم سراغ زورگویی و گلدوری کف جامعه نفس کش تلبی با پنج بوکس و آچارچرخ در خیابان بیانی شماره 976 بدانید و آگاه باشید که داشتن سینه یک و پشت بازو و خالکوبی‌های متعدد در نواحی مختلف بدن هیچ ایرادی ندارد اما اگر این مجموعه با شعور اندک و میل به خودنمایی و زورگویی ترکیب شود شما را میتواند تبدیل به چیزی نماید که در اصطلاح به آن ارازل و اوباش گفته میشود پس اگر چنین شد بدانید که همانا از آخر و عاقبت نداشتندگانید ام جمعی از بروازو سین کفتریشون استفاده بهینه کرده ها و به جای عربده کشی سرخ گابون دنبال مودلینگ و بازیگری و خواننده شدن رفته ها و المز خودشون کلی محبوب شده های رادیو پس فرد دا دا دا دا دا دا دا دا دا موضوع برنامه زور و زوربویی یعنی خود ایرانی یعنی باید همیشه زور بالا سرمون باشه یعنی ما به زور آخوندارو آوردیم کار به زور حالا داریم باشون مبارزه میکنیم ولی اونا زورشون از ما بیشتره باید زور بالا سرمون باشه که یاد بگیریم چه جوری رانندگی کنیم باید جریمه بشیم باید به زور یاد بگیریم همه چیزو سپیده اصلا از سهران بله برحال اینم نظر سپیدو خانم بود البته این بزرگان نظام و این آخونده که گفتین اولش قرار نبود حکومت کنن بعد یه و دیدن دیگه انگار فاز میده دیگه یه دفعه تصمیمشون عوض شد ولی بله خب جریمه رو که باید بشین دیگه اون همه جای دنیا جریمه میشن دیگه چرا همه چی به همه چی, چی رب میدیده از شما خواستیم به ما بگین تا حالا کسی بهتون زور گفته حالا میخواد توی خونه باشه یا توی مدرسه یا سر کار گیر زورگیر هم نیفتادین گیر پلیس یا گشت ارشاد یا خودتون چی تا حالا مثلا با و زورگویی جای کار خودتون رو پیش بردین مثلا توی مدرسه کسی گوشمالی دادین یا زورکیز تو صف زدین یا توی محل برای کسی گردن کلوفتی کردین شاخشونه کشیدین؟ کلن این هفته گفتیم بهمون از خاطرات زور ها و زیر زور شنفتنهاتون بگین بلکه ای مورد ستم قرار گرفتین یکم سبکشین ای برعکس بوده خدا از سر تقصیراتتون بگذارد خب ما در پنج خاطرات خیلی بری از زور داریم بیچارو شدیم از بس تو همه صفحه باستانیم و از همهتری صفح نو مثل تموم نمیشد که لاستم هی وام روزی سه مرتبه پدرمون درمون در میمون بله خب به حالا صفحه نو اینا که برال خوب بود حالا در پنج ها نمیدونم ولی فقط در پنج نبودن دیگه یه سری از در ش بودن زوری که بعد می زدیم تو اتوبوس جاشیم واسه جدید هم زور میزنم برای اینکه تو مترو جاشنله. دیگه برحال در پنجای و در شستی ها با زور و زورورزی خاطره زیاد دارن. ممنون از تماستون. اگر خواستید با ما در ارتباط باشید و به ما بگید که آیا تا به حال کسی بهتون زور گفته یا آیا شما جایی کارتون رو با زور پیش بردین یا به کسی زور گفتین میتونید به ما ایمیل بزنید passwordatradiofarda.com ایمیل ماست و در فیسبوک گوگل پلاس سام اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برام کامنت بذارید های پیامگیر ما 20420221124133 و 163 اونایی که از داخل ایران تماس میگیرن دو صفر چهارصد بیست دویست و بیستوشهش کانال تلگرامی داریم میتونید در تلگرام با ما همراه باشید و امکان اپلیکیشن رادیو پس فردارو میتونید دانلود بکنید روی موبایل هاتون و از اون طریق صداتون رو به ما برسونید و یا صدای رادیو پس رو بشنوید. برگی سیاه تیجان کمتر زنشانه. چون در چین و شکنش دارن دل من کاشاره بکشاز مو گفت چندین تا بکشایی گرفی شاید دیوانه تا شای دی شاید ز دل دارد خانه مجروح گرداد جوزنی هر دم شانه مجروح گرداد جوزنی هر دم اصولاً یکی از متداولترین جاهایی که زورگویی و قلدریسم تبلور پیدا میکنه کوچو خیابونه. قدیما هر محله واس خودش گندلاتی داشت که بدون هماهنگی با ایشون اصولا اهالی محل در خونه‌شون هم نمی‌تونن رنگ بزنن. یعنی این عزیزان در جان و مال و ناموس مردم دخیل و سعیم بودن. گندلات هر محلی هم برای خودش یه رزومه و یه کراماتی داشت که شامل دوران حفص و چند تا شیرینکاری دیگه اش بود که بیشتر بین مردم به اون کارش معروف بود مثلا مثلا چه میدونم گندلات دارقوز تپه بالا مثلا شهرتش این بود که با یه مش زده یه گوساله یه تونی رو ضربه مغزی کرده حالا دیگه چی بوده مشکلش با گوساله ها چرا حرفشون شده و اینا حالا مطرح نبود خیلی یا گندلات یه محله دیگر رو می گفتن تو جنگل خرس بهش حمله کرده ایشون هم نامردی نکرده خیرسه رو گرفته با عیزتون به شب بخیر گفته دیگه حالا بیگه زورش رسیده دیگه قدیما کلن اینجور کارا نشونه مردونگی و خیلی قدرت و خفن بودن و کار درستی و اینا بود دیگه دوره البته اینجوری بود دیگه موسیقی اما اما ظهور تکنولوژی حتی روی لات بازیام تاثیر گذاشته قدیم ترا گندلاتا و قلدورای محلوا میزدن هم همطوری گفتم مثلا سر گذر و راه میبسن و اونا اصطلاحا نفسکش کش می طلبیدن و از این کارا الان دیگه میشینن تو خونه نفسکش کش می طلبن همزمان با موبایل هم از خودشون فیلم و سلفی میگیرن پخش میکنن میذارن روی شبکه اجتماعی که حساب کار دست همه بیاد چند وقت میشم چند تا از این کلیپ بچه های بچهای اه اه مازندران کلی دست به دست میشد الان یکیشون هست میسم جمونگه که ظاهرا یکی ادعا کرده که میتونه میسم جمونگو بزنه ایشونم شاکی شده اینجوری واکنش نشون داده مصطفی اینجا گوز کنی لائن دره تلگرام دره پیام بدنی به میسم جمونگو بزومه این میسم جمونگ سهی سالم برای کار بزرگی من در حاله تو مالی همش بیپ بود کلا حنا بر خدا. البته باید خب برای این صدا رو با تصویر ببینید که متوجه بشین میس هم واقعاً واقعا کیه یا یکی یکی دیگه هست اینم گوش بدین ایشون گندلات بالا خیابون نمیدونم کجان گندل احمد قلی پور سمار باشه بالا خیابون ادکو هر چی برای بچهای بالا خیابون ادعا کنه من اول ها؟ طرنگ. بله این. با و من دیگه حرفی ندارم فقط این صداهای جون وسدا هه ها اینا این داش دشمن فرضی آبجوکی و اینا میزاد. لنگو پاچه پد میکرد و اینا در جریان باشین. خلاص ما همون پایین خیابون راحتیم. بالا خیابون واس شما. مخلص شما هستم. یه از خودخو تایو نمیست که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشند خوب از بالا خیابون بریم به سمت الی خیابون به سمت کامران ملکموتی سلام کامران سلام جان سلام به همگی از مراسم افتتاحیه جشنواری فجر رو برند شب گفتی مراسم هاشیه ای چیزی نداشت را بالا شاید بشه مراسم دیشب و پرهااشیه ترین مراسم افتاایی این چند سال اسم گذاش براش از دعوت نشدن عوامل هشت فیلم انیمیشن شرکت کننده تو جشنواره نامه اعتراضش تا ترک سالان به خاطر نبودن جای نشستن برای دعوت شده بگیر اظزار علاقه علی جنتی به سریال سریالخوااببیدا یا همون ناتاشا همینطور ظزار علاقه وزیر تابون و کار رفای اجتماعی آقای به فیلم توپولی حالا من نمیدونم به خاطر از این بازیگران البته حاشیه اصلی تلویزیون درست کرد. چطور تلویزیون یاد چیکار کردن بود؟ مراسم که خوب البته زنده پخش نشد. 1 سال بعد از اتمام مراسم شبکه نمایش با سانسور زیاد و حذف حرفای زده شده مراسمو پخش کرد. بعدش هم تمام قسمتایی که مجری مهناز افشار بود و نمای دور نشون داده شد، عجب. همونطور هر که فاطمه معتمدی آریا روی صحنه اومد یا تماشاشیا رو نشون میدادن یا واظن تصویر از دور پخش میشد. دیگه تصویر کم و برده بود، کم و دور از این موج مکزیکی اول پخش کنند. <تلویزیون> یه اتفاق تذوق که تو مراسم دیشب صورت گرفت وقتی بود که کلیپ یادمان درگذشت رو پخش شد از سوپ بالکن چند نفر داد زدن فروزان هم بود فروزان هم عجب خب این از های مراسم افتتاحی فردا چه فیلمایی نشون داده میشه کامرا فردا پنج تا فیلم تو کاخ جشوارا به نمایش درمیاد مجتبی به کارگردانی محمد دامنزن یک شروند کاملا معمولی مجید برزگر جشن تولد عباس لajeوردی دلبری جلال اشکیزی و آخرین بار کیسه هرودی ساختۀ فرزاد معتمن با بازی فریدوز عرب نیا آتیلا پسیانی و ژاله اسماعیلی بریم بخشی از صدای این فیلم لاقابل با هم بشنویم حالا که نمیتونیم ببینیم بشنویم که کم گرفتارم ولی یکی از سوالا رو قرار می‌دیم با دیتیل براتون توضیح میدم سحر کجاست سحر سحر کی دیگه جاش بودی چیکام کردی بالاخره شما یه زنی میدونی هست بزنی از من میشنوید دیگه بهش فکر نکن سحر دیگه بر نمیگرده همین دیشب تا ساعت 12 واسه اون پسره بوده پسره رو خودم با چشمای خودم دیدم مگر نه دیدم ها. بگو دیگه مگه ندیدم به بگو مگه ندیدم اتفاق اصلا وقتی نیست هم سربرد دنیا روی ثانی است تو هر ثانی یکی میره بالا یکی میاد پایین بخشی از صدای فیلم آخرین بار که صح رو دیدی رو شنیدیم به کارگردانی فرزاد متمنن خب خبر تازه دیگه چی داری برمون؟ اولاً فعلاً که ترانه‌ای خونده شده برای سریال شهرزاد هر می هفته ماجرایی را می‌نازده هفته پیش شاعر ترانه‌ی افسار که استاد شهریار معرفی شده بود پیدا شد که خانمی به اسم پریناز جهانگیر اثر این هفته هم اردلان سرفراز سری قدیمی به ترانه برخیز که توسط سینا سلک خونده شده اعتراض کرده گفته شعر این ترانه متعلق به من نه هوشنگ تا چند سال پیشم توسط ابی به اسم محتاج خوانده شده و من وکیلم از طریق قانون تو ایران راجع به این سرقت اقدام میکنه بسیار خوب بریم این پس بخشی از این سرقت رو بعد از این که باید خدافزی میکنیم بشنویم برخیز رو با صدای سینا سرلک میشنویم تا فردا کامران عزیز تا فردا خدا نگهتر. برخیز که غیرست و مرا داد نیست گویی همه خوابه ساب به کسی نیست آزادی و پرواز از آنک به این خو جز رنج صففر از قفید تا وفسی نیست این بافله. از قفل سالار خراب است اینجا خبر است پیش و باز با سلام و کسی دوشنبه شب را ضمن تحییر از اعتراض شش هزار نفر به رد سلاویتشان در شوراوی نگهبان با مروری بر عناوین مهمترین خبرهابی امروز و امشب آغاز می حمله کلامی محمد جواد لاریجانی به حسن خمینی با زیر سوال بردن اجتهاب وی و نظر کارشناسان که همینجوری زمینای اطراف تهران رو به این آقا جواد بدن دیگه خود امام امت هم میبره زیر سوال توصیه عصانی روحانی رئیس جمهور که مردم در هیچ شرایطی نباید به صندوق های رأی پشت کنند و توصیه ناظران به ایشان که الان شما باید نگران پشت شورای نگهبان باشی نه پشت مردم و اعلان فرمانده نیروی دریایی سپاه که از ملوانان آمریکایی دستگیر شده کلی فیلم گرفته ایم و درخواست فعالا نرسه پخش سیری غیر مجازی کشور که داداشت به و ما, ما تو کل سر چهار رای دنیا پخشش میکنیم مهمترین سر خط خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با همکار خوش آقاوزم بول Бо علی متحری نماینده مجلس در باری گشت ارشاد گفت از نظر اسلام ما حق تجسس نداریم. یعنی اگر زن و مردی یا دختر و پسری در خیابان با هم راه می روند. این که بگویم شما چه نسبتی دارید زن و شوهرید یا نیستید اینها درست نیست در همین رابطه یکی از کارشناسان امور دل و پسی کشور به خبرنگار ما گفت وقتی که یک نماینده اصولگرا اینطور در مورد مسائل ناموسی نظر میدهد دیگر هیچ توقعی از اصلاح طلبان غربی و باقی گروه های ماند نباید و ویفزود دانستن نسبت زنان و مردان حق معموری نگشتر شده است و مستحب بست معمور حتی به پاسخ شفاهی آنها هم اکتفا نکرده همونجا آنها را برای اثبات مدعایشان به پزشک قانونی ازام نماید تا خدایی نکرده رابطه نامشروعی در کشور پا نگیرد پایان مشروع اخبار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 مقدار زیادی امام سفارش دادن که همین مسئله شده کارگاه های مختلفی برای خب. ساخت ایشون راه بیفتن در شفت کشور همکار گرامی حجب جنسشون چیه بعد این امام ها همکار گرامی خب البته بستگی به بودجه اون نهاد داره ولی بیشتر سفارش ها سفارش امام مقوایی همکار گرامی امسال اینم بگم با توجه به اینکه تحریم ها برداشته شده مهم. چند تا امام آهنی هم سفارش دادن همکاران امام آهنی <تصفح> بله ب بله. <تصفح> او اون نیفته رو سر <تصفح> ملت حالا خب همکاران گرامی اونجا دیگه چه چیزهایی میسازن غیر از همکارا تو این کارگاهی ام. که من هستم سفارش هواپیمای هم قبول کنن همکارا گرامی ای راستی اون عکسی که چند روز پیش منتشر شده برای. بود که یه هواپیمای خندیداری رو به عنوان هواپیمای امام ساخته بودن کار همین کارگاهی بوده همکارا گرامی واقعا من پرسیدم از یکی از مسئولین این کارگاه گرامی نه ایشون گفتن نه اون که شبیه هواپیمای جیمبا بود رو اینها نساخته, نساخته بودن, بودن همکارا گرامی خیلی خب پس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 این آهنیه ببا. یا مقبایی حال؟ الو آقا بپا عل... بپا نمونی زیر آمی. امام حالا. کار دست خودت بدی هم گرامی بسرم آقا گرفتم شما اون برش بگی الو بگی آقا اله با, با توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و ببا. امامی دیگر خدا به خدا این پسری کار دست خودش میده میشه شهید راه امام خود امام هم چنیز امام غلابیه دیگه چه فایده کردم و از خیلی راضی هستم بله. حالا خانواده هی به من زور میگن فشار میرن که یه زن دیگم بگیرم خاطرین که این ایالم بچه داره نمیشه میگن عجب. تو باید حتما اجبارن بچه دار بشین زور میگه آقا میگه من اصلا بچه نمیخوام میگه نه ببینم زورگویی دیگه حالا اینون بچه بساره به دنیا بیاد که باورش نمیشه به زور منو مجبور بله. میکردم بچه دار بشن میشه نه والله تو باشه از این زورا اصلا آقا به زور آدم که نمیتونه بچه دار بشه که بالاخره مسائل به شب بخیری و اینای این مقدماتی میخواد با زور و دعوا و تهدید و کتک و اینا زبونش نمیچرخه شب بخیر چه برسه بچه دارم بشه حالا دیگه حالا زن اول یا زن دوم دو حالا خیلی فرقی نمی کنه. خیلی ممنونم و تماسشون <تصفح> <تصفح> بله با چه زورهایی واقعا مردم درگیرن آدم میمونه یه وقتایی اما بریم سراغ موضوع خودمون این زورگویی در جامعه زورگویی توی اجتماع مخصوص اشرار و گندلاتا نیست فقط یعنی ما هزار ازار ما شما حتی اگه به سکنات و رفتارهای دورو بریاتون هم دقت کنین به راحتی میتونین نشونه‌های زورگویی رو ببینین مثالاش هم که دیگه خیلی مشخصه مثلا مثلا شما تو خیابون در به در دنبال یه جای پارکی بعد بعد از چلو پنج دقیقه گشتن و این ور و اون و و فلان یه جای توپ پیدا میکنی میری جلو راهنما میزنی سر می‌چرخونید دند عقبی آی بری پارک کنین یه ذره میای میبینی. یه دوست زورمندی سر ماشینو کارت تو جای پارکی شما از همون پشت فرمون تلاش میکنی بلاخره بهش حالی کنی داداش آب جی اینجا رو من اول دیده بودم فلان خب طبیعتا دوستمون خب همه تلاشی میکنه که اصلا نشده و حالیش نشده و اینا میاد پارک میکنه میری پایین بهش میگی بابا جون جای پارک رو من اول دیدم بعدم حق تقدم با کسی که داره دنده اقب میره توی جای پارک نه هر کسی که زودتر توش. اول که خب احتمالاً دوستمون حتی شیشر هم پایین نمیده خودش میزنه به کوچه علی بعدم تازه اگه شیشر رو بده پایین استدلال های شما رو هم بشنوه کلا میذنه زیر همه چی داداش همینه که هست زورم میرسه جا پارکو گرفتم چی میگی حالا دیگه شما به اینجور جور موقعا برای مقابله آپشن های مختلفی جلو روتونه میتونید مراجعه کنی به صندوق عقب ماشین و یه جکی آچار چرخی چیزی به هر به برداری بیای بکوبی وسط کاپوت ماشین وا بدین وسیله اعلام جنگ کنی که ما اینو اصلا توصیه نمیکنیم اصلا کار خوبی نیست خودتون کنترل کنید یا مثلا میتونید چشاتونو ببندی دهن مبارک رو وا کنید هرچی ازش در میاد دهنت باره اول وسط تا آخر طرف بکنی که اینم از شما بعیده اصلا زشت یعنی چی ای ای بله پس میتونید چیکار کنی یه نگاه عاقللا در سفی بکنی به شک متاسفم براتی تیم بش بگی که خب این مودبانه ترین برخوردی که میشه کرد و حتما دیگه این یکیو انجام بدین و آ حتما انجام بده عداقل طرف نره بر بچه الجون تعریف کنه بگه جاپرک که طرف ازش گرفتم جی کشم در نیدم جین اسکل حزت من نگاه کرد البته نهایت و نتیجه این اینه که شما جاپاررک رو از دست دادی و این واقعیت تلخ رو به هیچ وجه نمیشه عوض کرد متاسفم برات آدم یه جایی تو زندگیش مجبور قلدوربازی در بازی میاره نه که بخودا مجبور می صف اتوبوس یا وقتی در واگن مترو باز میشه که باید هول بدی تا بتونی سوارشی شی و یا یکی دیگه هلت میده اونجایی تو سوار میشه یعنی یه جورایی اینجور وقتا آدم بدون اینکه حواسش باشه اول یکی از حقوق تبیج فرض میکنه دیروز دریا دوستامد دنبالم باش برم جلسه عملی کلاس رانندگیش. راننده مرد بود. طبق قانون آموزشگاه دریا باید یه همراه با خودش میبرد خلاصه سر یه چهارراهی دریا منتظر بود بش را بدن بپیچه به چپ. چندباری باری پاشو گذاشت رو گاز که بره. هی نگاه کرد ماشین داره میاد زد رو ترمز. یهو صدای معلمه در اومد که خانم سوار آسانسور که نمی‌خوای بشی تعارف میکنی. دریا گفت خب الان حق با اون راننده هست که مستقیم داره میاد آقای گفت هرچی چی تو کلاس تئوری یاد گرفتی بریز دور جانم اینجا صحنه عمل خیابون عزیز من تو خیابون اونم خیابونای تهران میخوای راننده بشی بعد قلدربازی بلد باشی وگرنه کلان رانندگی رو ببوس بذار کنار دریام از خیر کلاس گذشت چاره رو که رد کردیم زد کنار پیاده شدیم برگشتیم خونه ولی آخرش هم ما نفهمیدیم اون کلاس عملی آموزش رانندگی بود یا آموزش قلدربازی برو بریم فریوررز غریب سلام چه خبر رو ؟ سلام سلام به همگی به بهانه بازگشت مجر صولان پوره ایداری پدر استقللا که به خاطر بیماری چندنت در بیمارستان درطری بود به چمن سبز خرشی جان صدای این دختر کچولوی استقلالی رو بشنویم که یه جورایی با مرزه واسه منصورخان آرزوی سلامتی کرده بشنویم دادلا سلام از وقتی که بالا سلطنت نیست جاتون خیلی قالیه منصور, من منصور خان منتظراکید زود به زود سلامتی بلگردید دوستتون داریم اوخی خب ما هم خوشحالیم از بهبودی و سلامتی منصور و بازگشت مجددش به میادین ولی خبرم از پرسپولیس بده که دیگه جنسمون جورشه دیگه سرشی توی این یکی دو روز گذشته پرسپولیسی ها یکی از گلای بازی محروف شیشتایی ها رو پیدا کردن که قرار به زودی هم منتشرش کنن من وقت تو میتونی واسه یه جلال راحت که میگفت مدرکی در مورد اون بازی وجود نداره حسابی کوری رو کنید بابا اونا که با بدون مدرک هم تو قوتی هن <تصفح> <تصفح> ما با زعفا مهربانی میکنیم خب <تصفح> خبره دیگه هم داری؟ چه خبره دیگه؟ متاسفانه یا خوشبختانه البته متاسفانه از نظر خودمون دوره چهار ساله دوم علی کفاشیان بر مصند فدراسیون فوتبال داره تمام میشه فعلا احتمالاً در آینده اره دیگه نداریم آره واکنش های متفاوتی بوده در شرایط حالیه فوتبال به این ماجرا که امروز مرتضی فنونی زاده بازیکن پیشین پرسپولیس این جمله کینایی عامل دو پهلو گفته در مورد آقای همیشه خندان آقای کپاشیان مرتزا گفته کپاشیان مدیر خوبیه اما برای بانک مرکزی <تصفيق> خب اتفاقا تو مملکت خب همه چیز همینجوریه دیگه همه خوبن ولی برای جای دیگه ای که... یعنی نه اون جایی که هستن برای یه جا دیگه چیز خیلی عجیبی نیست من ممنونم از در فری برز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار. آقا حما شوخی. دوست نداره. یعنی چی؟ خب این همه برای اینا تلاش این همه با سردار باقری زدی، بوگسین یعنی چه بابا حسله بابا چه زنده یعنی کسی از جد کرده تو دادی دادی بگو بریم شمشیر من را در نقطه مناسبش فرو کنیم ما؟ بابا کس... دادی تو فقط حرف بیزنی توی بملکت حق منو رو دارم میخورن توی یعنی هیچ کاری از دستت بر میاد برای جگر پارت انجام آه. بدی اصلا بگو ببینم چرا منو به دنیا آوردی دادی البته ما خب مستقیما شما رو به دنیا نیاوردیم مربای بابا ولی خب نقشه به سزایی در مراحل قبلی داشتیم که حالا بگذاریم بگو ببینم چی شده این اسرائیلی اذیتت کرده نه بابا تو هم باله. چپ می‌دریس میای زورت بفشید میرسه ها این کارا که جدید آمدن به تو بی احترامی کردن بریم ده. از دم تیغ بگذرانیمشون کارموزا میگی نه بابا این بدبختا که اینجا همش دادن خودشون گیج میخورن اینجا نمی دونن چی شده بنال دیگه پای همینجوری کلا اعلام جهاد کنیم به خاطرشون نه خیدی اتفاقا از دست همین مقام معظم رهبریتون شو هم حس بیا او دست مقام معظم رهبر مگه آدم شی میشه اصل بابا این چه حرفیه زبانت رو گاز بگیر. بله مگه چیه؟ واقعا دل منو شکسته ایشون دادی من دیگه نمیتونم. مگه شما روبطه خاصی با معدم داشتی عزیز من که حالا دلت شکسته. نه دو بله پای بچه نه. چیزی وسط نه دادی بابا تو همه من یه نشنی دیروز از کیا تقدیر کرد از تقدیر کرد؟ آه. چرا پس کسی به ما خبر نداد؟ نه. بگو دیگه با... کشتی منو بله. نه خیلیشون به فرمانده نیروی دریایی سپاه و اینایی که خوب. ملوانای آمریکایی رو بازداشت کرده بودن نشون دادن دیگه نشون دادن؟ بله به لاش نشون دادن بابا نشون ب... فتح دادم دادی آه. نشان نشان فتح میدونی بله. یعنی, یعنی چی واقعا من دونه میانه چی خوب چون ولی ایشان نشون دادن حتما کار خوبی بوده دیگه پس. بابا من این همه بله. سال تو این مملکت جون کندم دادی این همه سال رفتم بله. بله. از گامبولا و سوازیلند و جزایر ماکارونی جنس بودم تو این مملکت آخه کارو بپرد دیگه پسرم ماکارونی خیلی لازمه برای بابا بابا چرا هیچی؟ به پسر عزیزم مربای گلابی بابا بیا ما خودمان شما نشان می ده کاری نداره که بابا من نشان و آقا رو می بیا, بیا. شما رو تو با من شی ببینم شی خو خو پسر عزیزم بیا نکن نه. نه. نه. نه بابا بیا مقاومت نکن بیا ببینم بیا ای. بیا نده بابا انقدر ددی نازم باش. لیش. آرام باش آرامش واقع که دامان ما آغاز همه آه. خوبی های ددی نگفتی چرا منو به دنیا آوردی پسر عزیزم شما با این حیکلت نمیدانی ما شما را به دنیا نیواردیم یعنی من سر رایی بودم ددی نه خیر پناه میبرم خدا من نظور ما اینه که شما رو مادرت به دنیا آورده دیگه اون اما... که میدونم بابا بله. بگم چرا یعنی منو چرا به وجود آوردی دیگه آن از اون لحظه. آه... آه... دیگه آه... پسرم آدم مؤمنات رو بدون کنترل و پیشگیری آلی. قدایت بکنه دیگه همین میشه دیگه آه... نکنی تو یه وقت از این کارها واقعا که نکنی... یعنی من خالم... نخواسته بودم آه... دادی آه... نه شما برخواسته بودی پسرم از فشل این فشل نده بگه این قد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 شرکت نماید دستور جلسه انتخاب بهترین سفارت یا سازمان برای حمله و اشغال، انتخاب بهترین شعارها علیه مقامات دولتی داخلی و خارجی و توضیح غنیمتها و کمک از های باقی مانده عملات قبلی به سفارت انگلیس و عربستان لطفا در هنگام مراجعه کفش دیوار نبردی و باقی لوازم حمله یادتون نره هیئت مدیره پایگاه دیوارنوردان متحد دلبا پس کل کشور پوگلاده روزنامه ی آرمان امروز به نقل از رئیس مجلس با اشاره به تجمع دلواپسان در اعتراض به قراردادهای نفتی تیتر زده بود که تظاهرات خیابانی راه اصلاح قرارداد نیست بر بروچه ها هر وقت با همین فرمون رفتن نتیجه گرفتن شما توی کاری کار که تخصص نداری دخالت نکن سرت به کار خودت باشه والله. روزنامه آفتاب به یزد امروز تیتر زده بود که انصراف مکدونالد از حضور در ایران مکدونالد تو بی من تو بی من روزنامه رسالت امروز از قول محمد جواد لاریجانی تیتر زده بود که انتخابات در ایران برای غرب کابوس است والا با این وضعیت رد سلاحیت ها یعنی با این وضعیت رد سلاحیت ها انتخابات برای خود ما هم کابوسه روزنامه قانون به نقل از آقای روحانی امروز تیتر زده بود که شورای نگهبان امید را بازگرداند اگه به غیر از امید بتونه موینو و شهرام سلطی را برگردن میشه ممنونشون باشه. خب امشب هم تموم شدیم. پس پسوردای دیگه هم تموم شد. شاعر میگه به کسی چه اگر این نگاه تا همیشه در صورت تمام رهگذران دنبال نشانی از تو بگردد یا این چشمهای غریبه با خواب سیاهی شب را گره بزنند به سرخی سپیددم دم پی ردی آشنا از تو در رقص باران در زمزمه باد در سکوت بی این روزها شبتون خوش تا فردا به کسی چه من چناره عکست میشینم اگه توی آینه ها تو رو همیشه میبینم اون که خندهش رو دیواره تره تصویر منه نکنه این گریه ها رس رسی تقدیر منه نکنه را ساسی تقدیرم منم تو بگو رده کیه توی این ترانه ها تو بگو من خسا از همه این به ها ای میگم خطرها تو بذارم پشت سرم بگو چه چجوری میشه که از تو بگذرم مثل یه غریب از این آشنا خسته مثل این مسافره به جده واسه نشد تو دیگه نگو تمومه تمومه این فسلای با تو مودنم یه اشتباس همه یه روزای با تو مودنم یه اشتباس نصم حرفی نزم زندگی از تو خوندنم واسه من هوا چیه نفس کنارت مونده